مصنوی معنوی مولوی برنامه سیو یکم ملامت کردن مردم شخصی را که مادرش را کشت به تهمت آن یکی از خشم مادر را بکشت هم به زخم خنجر و هم زخم مشت آن یکی گفتش که از بدگوهری یاد ناوردی تو حق مادری. هی تو مادر را چرا کشتی؟ بگو. او چه کرد آخر؟ بگو. ای زشت خو گفت کار کرد کن آره است کشتمش کن خاک ستاره است گفت آن کس را بکاش ای محتشم گفت پس هر روز مرده را کشم کشتم او را رستم از خونهای خلق نای او برم. است از نای خلق نفس توست آن مادر بدخاصیت که فساد اوست در هر ناحیت هین بکش او را که بهر آندنی هر دم قصد عزیزه می کنی از و این دنیا خوش بر توست تنگ، از پای او با حق و با خلق جنگ. نفس کشتی باز رستی زیتزار، کس تو را دشمن نماند در دیار. گرشکال آرد کسی برگفت ما، از برای انبیا و اولیا، کن بیا را نک نفس کشته بود، پس چرا شان دشمنان بود و حسود؟ گوش کن تو ای طلبگار سواب، بشنوین اشکال و شبحت را جواب. دشمن خود بودند آن منکران، زخم بر خود میزدند ایشان چنان، دشمنان باشد که قصد جان کند دشمنان نبود که خود جان می کند نیست خفاشک ادوی آفتاب او ادوی خیش آمد در حجاب تابش خورشید او را می کشد رنج او خورشید هرگز کی کشد. دشمنان باشد که زو آید عذاب. مانه آید لعل را از آفتاب. مانع خویشند جمله کافران. از شعای جوهر پیغمبران. که هجاب چشم آن فردند خلق چشم خود را کور و کش کردند خلق چون غلام هندوی کوکین کشد از ستیزه خاجه خود را می کشد سرنگون می افتد از بام سرا زیان کرده باشد خاجه را گر شود بیمار دشمن با طبیب کند کودک عداوت با عدیب در حقیقت رهزن جان خودند راه اقل و جان خود را خود زدند گر گرخشم گیرد زافتاب ماهی گرخش میگیرد ز آب تو یکی بنگر کرا دارد زیان عاقبت که بود سیاه اختر از آن گر تو را حق آفریند زشت رو هن مشو هم زشت رو هم زشت رو ور کفشت مراو در سنگ لاخ دو شاخ استت تو چهار شاخ تو حسودی کس فلان من کمترم می فضایت کمتری در اخترم خود حسد نقصان و عیب دیگر است بلکه از جمله کمیها بدتر است. آن بلیس از ننگ و آره کمتری خیش را افگند در صد ابتری. از حسد میخواست تا بالا بود. خود چه بالا بلکه خونپالا بود. آن ابوجهل از محمد ننگ داشت. و از حسد خود را به بالا می فراشت. بول نامش بود و بوجهل شد. ای بسا اهل از حسد نا اهل شد. من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به از خوی نکو. انبیا را واسطه زان کرد حق تا پدید آید حسدها در قلق. زن که کس را از خدا آره نبود حاسد حق هیچ دیاره نبود. آن کسی کش مثل خود پنداشتی زن سبب با او حسد برداشتی چون مقرر شد بزرگی رسول پس حسد ناید کسی را از قبول پس به هر دور ولی قائم است تا قیامت آزمایش دایم است هر که را خوی نکو باشد برست کسی کوشیش دل باشد شکست پس امام حی قائم آن ولی است خواه از نسل عمر خواه از علی است مهدی و هادی ویست ای راه جو هم نهان و هم نشسته پیش رو او چونور است و خرد جبریل اوست وان ولی کم از او قندیل اوست وان که زین قندیل کم مشکات ماست نور را در مرتبه ترتیب هاست زانکه که هفت پرده دارد نور حق پرده های نور دان چندین طبق. از پس هر پرده قوم را مقام صف سفند این پرده تا امام اهل صف آخرین از ضعف خیش چشمشان طاقت ندارد نور بیش وانصف پیش از ضعیفی بسر تاب نارد روشنایی بیشتر روشنی کو حیات اول است رنج جان و فتنه این احول است احولی ها اندک اندک کم شود چون ز هفتزد بگذرد او یم شود آتش کصلاح آهن یا زر است کی صلاح آبی و تر است سیب و آبی خامی دارد خفیف نچو آهن، تابش خواهد لطیف. لیک آهن را لطیف آن شعله هاست، کو جذوب تابش آن اجده هاست. هست آن آهن فقیر سخت کش. زیر پتک و آتش است او سرخ و خوش حاجب آتش بود بی واسطه در دل آتش رود بی رابطه بی هجاب آب و فرزندان آب پختگی زاتش نیابند و خطاب واسطه دیگه بود یا تابه همچوپا را در روش پاتابه یا مکان در میان تا آن هوا می شود سوزان و میآرد به ما پس فقیران است که بی واسطه است. شعاله ها را با وجودش رابطه است. پس دل عالم ویست. ای را که تن میرسد از واسطه این دل بفن. دل نباشد. تن چه داند گفتگو؟ دل نجوید. تن چه داند جستجو؟ پس نظرگاه شعا آن آهن است پس نظرگاه خدا دل نی تن است باز این دلهای جزوی چون تن است با دل صاحب دل کومدن است بس مثال و شرح خواهد این کلام لیک ترسم تا نلغزد وحم عام تا نگردد نیکویی ما بدی این که گفتم هم نبود جزبی خودی پای کج را کفش کج بهتر بود مرگدارو دستگه بردار بود. امتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خریده بود پادشاه دو غلام ارزان خرید با یکی زندو سخن گفت و شنید یافتش زیرک دل و شیرین جواب از لب شکر چه شکراب آدمی مخفی است در زیر زبان این زبان پرده است بر درگاه جان چونکه که باد را در هم کشید سر صحن خانه شد بر ما پدید کندران خانه گوهر یا گندم است گنج زر یا جمله ما رو گجدم است یا در و است و مار مرکران زان که نبود گنج ذر به پاسبان به تعمل او سخن گفتی چنان، کز پس پانسد تعمل دیگران گفتی اندر باطنش دریاستی جمله دریا گوهر گویاستی نور هر گوهر کز او تابان شدی حق و باطل را از او فرقان شدی نور فرقان فرق کردی بحر ما ذره ذره، حق و باطل را جدا نور گوهر نور چشم ما شدی هم سؤال و هم جواب از ما بودی چشم کش کردی دو دیدی قرس ما چون سؤال است این نظر در اشتباه راست گردان چشم را در ماه تاب تا یکی بینی تو مه نک جواب فکرتت که کجمبین نیکونگر هست هم نور و شعاع گوهر هر جواب کن زگو شاید بدل چشم گفت از من شنو آن را بهل گوش دلالست و چشم اهل وسال چشم صاحب حال و گوش به قال در شنود گوش تبدیل صفات در ایان دیده ها تبدیل ذات ذاتش ار علمت یقین شد از سخن پختگی جو در یقین منزل مکن، تا نسوزی نیست آن اینال یقین، این یقین خواهی در آتش در نشین، گوش چون نافذ بود دیده شود، ورنه قل در گوش بیچیده شود، این سخن پایان ندارد بازگرد تا که شهر با آن غلامانش چه کرد براه کردن شاه یکی را از آن دو غلام و از این دیگر پرسیدن آن غلامک را چودید اهل زکا آن دیگر را کرد کردشارت که بیا کاف رحمت گفتنش تزغیر نیست جد چو گوید تفلکم تحقیر نیست چون بی آمد آن دوم در پیش شاه بود او گنده دهان دندان سیاه گرچه شه ناخوش شد از گفتار او جستجوی کرد هم زسرار او گفت با این شکل و این گند دهان دور بینشین لیک آنسو تر مران که تو اهل نامه و رقعه بودی، نه جلیس و, و هم بودی تا علاج آن دهان تو کنیم تو حبیب و ما طبیب پرفنیم. بهرکی که نوگیلیم سوختن نیست لایق از تو دیده دوختن. با همه بنشین دو دستن بگو. تا ببینم صورت عقلت نکو. آن زکی را پس فرستاد او بکار سوی حمام که رو خود را بخار وندگر را گفت خه تو زیرکی صد غلامی در حقیقت نه یکی آن نهی که خاجتاش تو نمود از تو ما سرد می کرد آن حسود. گفت او دزد و کجست و کجنشین. هیز و نامرد و چنانست و چنین. گفت پیوسته بودست او راستگو. راستگوی من ندیدستم چو او. گویی در نهادش خلقت است هرچی گوید من نگویم تهمت است کج ندانم آن نکو اندیش را متهم دارم وجود خیش را باشد او در من ببیند عیب ها من نبینم در وجود خود شها هر کسی گر عیب خود دیدی ز پیش کی بودی فارغ خود از اصلاح خیش قافلند این خلق از خود ای پدر لاجرم گویند عیب همدگر من نبینم روی خود را ای شمن من ببینم روی تو تو روی من آن کسی که او ببیند روی خیش نور او از نور خلقان است بیش گر میرد دید او باقی بود زان که دیدش دید خلاقی بود نور حسی نبود آن نور که او روی خود محسوس بیند پیش رو گفت اکنون عیب های او بگو آنچنان که گفت او از عیب تو تا بدانم که تو غمخار منی قد خدای ملکت و کار منی گفت عایشه من بگویم عایب هاش گرچه هست او مرمرا خوشخاجتاش ایب او مهر و وفا و مردمی عیب او صدق و زکا و همدمی کمترین عایبش جوان مردی و داد آن جوان مردی که جان را هم بداد صد هزاران جان خدا کرده پدید چه جوان مردی بود کان را ندید بر بدیدی کی با جان بخلش بوده؟ بحر یک جان کی چنین چونین غمگین شده؟ بر لب جو بخل آب آن را بود کوز جوی آب نابینا بود گفت پیغمبر که هر که از یقین داند و پاداش خود در یوم دین که یکی را ده اواز می آیدش هر زمان جود دگرگون زایدش جود جمله از عوضها ها دیدن است پس عوض دیدن زد ترسیدن است بخل نادیدن بود عوض را شاد دارد دید دور خواز را، پس به عالم هیچکس نبود بخیل، زن که کس چیز نبازد بی بدیل، پس سخا از چشم آمد نزد است، دید دارد کار جزبینا نرست. ای دیگر اینکه که خودبین نیست او هست او در هستی خود ای جو ای گوی ای جوی خود بوده است با همه نیکو و با خود بد بوده است گفت شاه جلدی مکن در مدح یار مده خود در ضمن مده او میار زان که من در امتحان آرم برا شرمساری آیدت در ما برا برنامه های مصنوی معنوی مولوی را مین و و شهباز ایرج تهیه و اجرا کردند.